اللهم انت السلام ومنك السلام ولك السلام و الیک يعود السلام سبحان ربك رب العزت عما یسفون و, و على المرسلين المرسلین و الحمد لله رب العالمین السلام عليك ایوها النبی و رحمت الله و السلام علی الامت الهادين المهديين السلام علی جميع انبیاء الله و رسوله و ملائکته اجمعین السلام علینا و علی عباد الله الصالحين السلام علی, علی امیر المؤمنین السلام علی السدیقة الشهید السلام علی الحسن و الحسین سیدی شباب حل الجنة اجمعین السلام علی علي بن الحسین زین العابدین السلام علی محمد بن علی باغر علم نبیین السلام علی جعفر بن محمد صادق السلام علی موسی بن جعفر کازم السلام علی علي بن موسی رضا، السلام علی محمد بن علی الجواد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 و الليل والنهار و النهار الله آخر الهد من نیل زیارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب اعزم الله اجورنا و اجوركم به مصابنا بالخسین عليه السلام و جعلنا و یاکم من الطالبين بساره به ساره اولی عمل المهدي قال ص عليه السلام انا از إلى كتاب کتاب الله و سنت نبیه ف قد امیدت و قد اوهیت. فان انتسمه او قولی و توتی او امری اهدکم الى سبیل رشاد خب بحث این بود وحی آمد تا ما این سنها رستگار شویم و در اثر مندی از وحی و استفاده بجای از وحی چه در زندگی فردیمون چه در زندگی اجتماعی‌مون چه در زندگی خانوادگی‌مون اون گونه که خالق ما ذات اقدس الهی میپذیرد باشیم و به کمال لایق برسیم بحث این بود که امام حسین علیه السلام در رابطه با واقعه کربلا چه لفظاً و قولاً چه عملا؟ به ما نشون بدن و نشون دادن تبیین فرمودند که چه موانعی سر راه انبیا قرار داشته که مانع تحقق هدف انبیا شده است یعنی اگر وحی آمد تا ما یک زندگی سالم فردی و اجتماعی داشته باشیم اگر بعد از نزول وحی و نبوت و این همه رنجی که انبیا بردن و پیروان انبیا در طول تاریخ زحمت ها کشیدن چرا تحقق نیافته است و چرا اون ایدئالی که آرزوی پیروان مکتب وحی است مشاهده نمی شود در طول نخشب گذشته چه با توجه به دروندینی چه بروندینیم مجملن به اینجا رسیدیم که لازمه تحقق هدف انبیا یک معرفت صحیح نسبت به وحی است دو عمل دقیق نسبت به اون معرفت ما در هر این در طول تاریخ و به ویژه در اصر خودمون مشکلات فراوانی داریم اگر قرار است وحی را بشناسیم معرفت نسبت به وحی پیدا بکنیم اون عاملی که قرار است این معرفت را برای ما ایجاد کند چیست؟ عقل که خداوند به ما داده است تا به وسیله عقل حق بودن وحی را اثبات کنیم و آنگاه جزئیاتی را که وحی برای ما مطرح می کند به کمک همین عقل بهتر بشناسیم و در مرحله عمل اون گونه که قرآن کریم فرمود تسلیم شویم تسلیم دو شکل است یک تسلیم احساساتی غیر آقلانه مقطعی حیجانی این کاری رو از پیش نمیبرد. برد هایی که تحت تأثیر حیجاناتشون امروز امری را ثابت و درست میپندارن، اما همین احساس و حیجان وادار میکند فردا اون امر را متغیر و غیر درست بپندارن لذا ما برای اینکه، به وحی علاق باشیم بپذیریم و عمل کنیم باید از سطح احساسات و حیجانات فراترائیم بحث درک و شناخت باشد معروف است که ناپلون بناپارت به یکی از حکمای معاصر خودش در فرانسه گفت مرا موعزه کن او سخن عجیب حکیمانه ای به ناپل اون گفت گفت شما نظامی که با صدای تبل به حرکت در و با صدای تبل از حرکت باز میمانیم به موعظه من که با تفکر و اندیش رب دارد چه کاری داری؟ یعنی اقدام شما، بازموندن شما، بر مبنای حیجانات و احساسات هست احساسات و حیجانات مثل حس زمانی عالی است که مقدمه عقل شود همونطوری که پنج حس ما چه شنوایی چه بینایی چه بویایی چه لامسه این حس قدرتی است که به وجود من و شما داده شده ولی اگر عقل پشتوانش نباشد همونگونه که ممکنه مطالبی را بشنوم، اما شنونده باید عاقل باشد عقل دخالت نکند هر که هرچه گفت قبول کنم اگر چشمم قراره ببیند اگر عقل حاکم نباشد چه ببیند چگونه ببیند و اگر ما این حس را یک سرمایه خوبی میدانیم در کنار عقل، اون ارزش‌های واقعی خودش را نشون میدهد. احساسات و حیجان هم همینطور است. باید مقدمه ای باشد تا عقل وارد شود، با شناخت درست و معرفت، اون امر احساسی، حالت معرفتی پیدا کند. وقتی معرفتی شد، در درون جان ما جا بگیرد. ولی ما این مشکل رو از صدر اسلام داشته ایم امروزم داریم که چی اگر عقل یک ابزار مفید برای معرفت است و رابطه عقل و وحی یک اثبات کردن وحی دو بهرهمندی درست از وحی اما دوچار افراد و تفرید شدیم برخی عقل را اونجا تا اونجا پیش بردن که دیشب نمونه خوندم و شبهای قبل که جای وحی را بگیرد قطعاً اگر کسی برای عقل این حد از کارایی را قائل بود غیر از اینکه که خدا عقل اثبات می کند این حرف غلط است نمیتواند اثبات درستی نسبت به وحی داشته باشد و از وحی استفاده درستی بکند یه روایت بسیار جانانه ای از وجود مقدس نبی اکرم در کتاب مجموعه ورام ور جلد دو صفحه و یا عباد الله پیغمبر خدا فرمودن، ای بندگان خدا انتم کلمرزا و رب عالمین که طبیب شماها به منزله مریضانی هستید که خدای عالم به منزله طبیب است فصلاح المرضا فیما یعلم هو طبيب و, و تدبيره او به لا فيما تشتهي المريز و يقتریحه الا فسلموا لله امره او تكونوا من الفائزين این تكونوا من الفائزين در آخر حدیث با قبلشود قط بفرمایید مثال میزنند پیامبر برای روشن شدن ببینید اگر یک انسان مريزی به پزشک مراجعه کرد دو مسئله در مریض است که اگر این دوتا حل نشود ولو پزشک حازق در مقابلش باشه دستورم بده بحرمند نمیشه این دوتا چیه؟ یک معرفت نسبت به صلاحیت طبیب اولین قدم مریض باید باور کرده باشد اگر ایکس الان در مقابل من ایستاده طبیب است من برای خود هرچه ارزش قائل باشم در رشته خودم خودم را علامه دهر بدانم نسبت به امر طبابت چیزی بلد نیستم و او باید مرا امر و نحی کند تا من بهره من شوم این امر عقلی است این نیازمند به معرفت عقلیه که این مطلب رو نسبت به پزشک من باور پیدا کنم دوم چون در درون من هوای نفس لذت جویی گل گل میکند چه بسا جلو آن معرفت را بگیرد گرچه چه میداند حق با طبیب است ولی بر مبنای هوای نفسش گفته طبیب را کنار زند حالا با مثال عرض میکنم که عینن در روایت نبی اکرم نافته شده فرض کنید بنده در مقام معرفت نسبت به مقام پزشک این معرفت رو پیدا کردم ایکسی اینجا تشف دارن دیگران میخواهند پنج ما و شش ما تو نوبت باشند تا این پزشک آنها را وزید کنه اما به بنده لطف کرده میفرماید من الان آمادهم شما رو معاینه کنم دستورالعمل بدم حالا به من دستور میده میگه شما از این لحظه به بعد حق ندارید یک ذره غذای شیرین بخورید بنده بر مبنای لذت جویی غریزه حب به غذا میدانم حق با اوسته ولی این لذت جویی نمیگذاره حرفشو گوش کنم. لذا اینجا پیغمبر خدا فرمودن شما و خدا مثل مریض و طبیبید بحثی که در طول نه شب کردم این همه سخنه حکما، عرفا، فلاسفه، متکلمین، حقوقدانان، جامعه شناسان به صورتهای مختلف و این همه آیات و روایات با توجه به زیغ وقت با هم به گفت شنود نشستیم به چه نتیجه رسیدیم؟ ما خیلی از مسائل را نمیدانیم. به مرور نظر ما عوض میشه سلیغه های مختلف ما بیچارگی ها در زندگی فردی ما و اجتماعی ما ایجاد کرده یک نمونه من با اشاره عرض میکنم الان صاحب نظران مسائل تربیت خانواده که در دانشگاه ها در حد رشته دارد تربیت خانواده تربیت اولاد تربیت افراد در شعون مختلف اجتماعی یه شاخش تربیت خانوادگی یک اصل محبت این محبت کردن که نیاز فرزندان است از نظر پدر و مادر نسبت به فرزند و رابطه متقابل چه حدش اعتدالی است چه حدش افراطی است که حدیش تفریتی مراجعه کنید در غرن بیستوم چقدر اختلاف آرا وجود داره؟ یک امر بشر اینه و لذا اون حرفو زده بود که براتون خوندم یک عقل کل لازم است میگه شما اگه با خدا میخوای مقایسه کنی مثل مریضی در مقابل طبیب مریض نباید بگه آی پزشک شما به من میگید که غذای شیرین نخور من خیلی شیرین پلو و ککوغندی دوست دارم میگه دوست داشتنه تو بذار کنار سلیغتو بذار کنار ببین من چی میگم لذا پیغمبر اسلام فرمودن در چه صورتی مردم نسبت به وحی فائزن فسلمو لله امرهو تکونو من الفائزین خودتونو تسلیم امر الهی بکنید تا رسگار بشید همون گونه که در بحث ایمان در قرآن کریم کرارن بنده اشاره کردم اگر قرآن می قد افلح المؤمنون مؤمنم فرمود است که تسلیم امر الهی باشه حالا یه روایت از امام صادق براتون بخونم کافی جلد دو صفحه سی ببینید چه نگاه عمیقی است رئیس مذهب من و شما ما هی داریم برای امام حسین سینه میزنیم افتخارم میکنیم برای امام حسین گریه میکنیم افتخارم میکنیم برای امام حسین جلسه میگیریم الحمدلله به کوری چشم حابیت روز به روز قویتر پرشورتر پر هیجانتر در کل جهان داره برپا میشه همش عالی ولی یه فراز از نامه امام حسین رو من به سران بصره ده شب دارم هی اشاره میکنم ادعو کم الا کتاب الله و سنت نبیه الا کتاب الله و سنت نبیه بابا کتاب خدا بابا سنت پیغمبر بابا ببینیم که اینقدر به عقل کم تجربه خودمون در بخش احکام که غیر مستقلات عقلیست ننازیم عقل در مستقلات عقلیه باید وارد شود. عقل در مباحث اعتقادی باید وارد شود، عقل در معرفت نسبت به اصل وحی باید وارد شود برای فهم اکثریت دین عقل با ذابطه از وحی باید استفاده کند اینا همه قبوله اما نه این که بگم سلیقه من میگوید این حکم خدا مثلا خدا فرموده نماز صبح دو رکد. من فکر میکنم سه بود بهتر بود از کجا میدونید به چه دلیل از کجا می‌فهمی شما این بهتره مگه خدای عالم بالاتر از همه نیست که اینو بیان کرده حالا امام صادق چه می‌فرماید لو ان قوما عبد الله وحده لا شَرِيكَ لَهُ دقت کنید شب آشوراز شوخی نیست این مطلب امام صادق علیه السلام اینا رو باید فکر کنیم لو ان قوما عبد الله وحده لا شريك اگر مردمی قومی دستهای گروهی خدا رو عبادت کنن که شریکی برای اونیست و عقام السلاط و عاط زکات و حج البیت و سامو شهر رمضان همین رو انجام بدن نمازشون رو بخونن روزشون بگیرن حج خانه خدا رو به جا بیارن ماه رمضان فلان همین درست سمه سپس غالو لشیعن سنع الله او صنعه النبی الا صنعه خلاف الذي سنع او وجدوا ذلك فی قلوبهم لكانوا بذلك مشركين اگر اینا رو انجام بدن ولی اینجوری بگن اینی که خدا کرده ای کاش اینجوری نمیکرد اینجوری میکرد یا تو دلشون بگذره فرمود بذلك مشركين اینا مشرکن نسبت به این مرحله از موحد بودن خارج شدن مؤمن نیستند ثم تلاها ذل آیه سپس امام این آیه را هم ادامهشون خوندن آیه‌ای که من اینجا بحثش رو براتون کردم آیه 65 سوره مبارکه نساء فلا ورب بکلا یؤمنون حتی يحکمو کفی ما شجره بینهم ثم لا یجدو فسهم انفسهم من ما غزیت و یسلمو تس یعنی چی چرا امام صادق اینجوری میگه یعنی آقا معرفت دینی تون قویت کنید ایمان ایمان باشه یه ایمان لرزان سست یا حیجانی جانی دهه محرم می شود اوج بگیرم بعد دهه محرم همه چی یادم میره یا بر مبنای سلیقه شخصی خودم یه دینداری سلیقه‌ای پیدا می کنم یه عامل دیگه که پیش میاد میره کنار اما یک انسان متفکر عاقله اندیشمندی که میگه روی وحی تدبر کردم عقلمو به کار بردم تمام دلائل عقلی رو در محدوده توانمندی عقل به جا آوردم به این نسیجه رسیدم که میتونه از خدا و کتاب خدا و اولیای الهی بالاتر پیدا بشه لذا تسلیمم گونه که شب آشورا به امام حسین دادن اینا کی بودن؟ اینا آدم های معمولی بودن وقتی امام حسین می اگر میخواید من بیعت از شما بردارم برید ایمان کجاست؟ یبن رسول الله یه بار که بیشتر ما رو زهیر ابن قین یه چیزی گفت، مسلم ابن اوسجی یه چیزی گفت، که اینجا گفتن گفتند. والله اگر هزار بار ما را بکوشند و زنده کنن دست از شما بر نمی‌داریم و حال اینکه یه بار بیشتر نمی‌کشند. یعنی ایمان، یعنی باور. روز آشورام نشون دادن. امام حسین فرمود نماز باید بخونیم. اومد آقا جلوت وای میسته. تیر از هر طرف می‌آمد. با آغوش باز تیرا رو به جان می‌خرید، امام نماز شو بخونه نماز امام تمام شد افتاد حبیب ابن مظاهر اومد بالا سرش اگر بعد از تو قرار نبود منم بیام میگفتم وسیعت کن ولی منم دارم میام نمیگم چشماشو با کرد نیمه رمقی داشت بریده بریده سخن میتونست بگه نه نه وسیعت دارم با انگشتش اشاره کرد به امام حسین به بهازل غریب شما رو وسیعت میکنم به این تن... بابا جانشود داره. راهش رفته. ایمانش اینه یعنی اگر میخواید راه خدا در این عالم تحقق بیابد برید در خانه اولیای الهی را بزنید ببینید چی میگن. وقت بر این مبنا نقطه مقابلش وسائل و شیعه جلد شش صفحه پونصد و هشت از پیامبر ازارعیتوم احل الریب ول بدع من بعدی وقتی بعد از من آدمای های کی که هی دارن تو دین شک و شبه و سستی ایمان فراهم میکنن ول بدع بدعت ها رو میخوان رواج بدن فا از منهم هم قاطعانه بیزاری از اینا از بدید شناخت داشته باشی به این راحتی گول هر کسی رو نخورید چهار تا جناب دکتر، جناب پروفسور جناب نمیدونم تأثیر کرده فلان دانشگاه، فلان دانشگاه به پس اسممون میبندیم پیشوند و پسوند در مقابل خدا قابل مقایس است این افراط خب اینو در طول تاریخ هم انجام دادن که نمونهاش عرض کردن بازم میگم خب پس یک معرفت درست نسبت به وحی آقلانه نه احساسی هیجانی همین جا یه استفاده کنم برم جلو خواهران و برادران بیایید امشب با امام حسین عهد ببندید یا حسین من از این فرمایش شما که فرمودی شما رو میخونم از کم الاله کتاب لا و سنت نبیه برای اینکه نسبت به این مطلب شناخ پیدا کنم قول میدم تا آشورای بعد لا اقل این دوازده ماه ماهی کتاب بخونم این مقدار نباید برای دینمون کار کنیم یکی به من میگو باقا یه کتابم بگی کافیه بودم. چی؟ جان داد روز آشورا. تیکه تیکه شد. ولی چیزی باید. آقا من حجره دارم. من بازار دارم. من مغازه دارم. من درآمد میخوام. من دانشگاه دارم. من چنین چنانم. تا این عرفا رو داریم. همینست و همینست و است ولی که معرفت حاصل نمیشه. یکی از کسانی که توی شهرستانی با من در ارتباط بودیم روز صبح به من زنگ زد فلانی شنیدم فردا میای فلان شهر من میخوام مثل... گفتم برات هیچ وقت نمیذارم گفتم چرا گفتم چند تا کتاب بهت گفتم بخون چند تا شو حالا خوندی با وقت نکردم شما به ما بگو گفتم تو که حاضر نیستی در طول یک سال گفتم چند تا کتاب بخون بخونی بابا یه مقداری هم کار بکنیم شب عاشورا تو سر ما میزنیم باید بزنیم اما امام حسین فرمود معرفت آگاه ببینید چی میگم خب احل فند رو آشنایی بشید سیر مطالعاتی درست بگیرید این قسمت اول جزه بدید سریع شم خب پس قرار معرفت معرفتم اینجوری نیست که آقا یه کپسول به ما بدید بخوریم یه دو تا لیبان آبم روش پردا بلند شیم یک آرف تمام ایار با معرفت تمام و کمال بشیم نه به قول اون بنده خدا خدا یا جان بلب رسید تا جام بلبرسید. رسید باید کوشید و زحمت کشید و کار کرد مخصوصا در این اصر ما انقدر توی این سایت ها توی اینترنت، توی این تلگرام ها مزخرفات دروغ بین را برای سست کردن اقاعد جوون ها رواج میدن طرف مطالعه نکرده با اهل فن در ارتباط نیست و فوری با این احساسات هیجان بیمعرفتی دست به دست هم میده فوری سست میشه آخواب این تلگرام برات میاد اولا. اونی که زده بگوی سندش کجاست؟ کی گفته؟ مدرکشونشون بده؟ ببین مدرک میده یا من با یه عده اینجوری کار کردم آقا اونا خسته شدن دیگه براشون نفرستادن دادن دیدن اینا توجه دارن به مطلب خواه یه مقدار وقتی دشمن بیداره ما باید یه مقداری بیدار باشیم در این رابطه اما قسمت بعدی دقت بفرمایید. اگر بناس هدایت الهی وحی باشد وحی در مرحله اول مربوط به حضرت حق است من سری رد میشم سوره مبارکه من آیه دویست و مستقیم اگه میخواید تو راه مستقیم قرار بگیرید خدا باید هدایت کنه اما همین قرآن کریم در سوره مبارکه شورا آیه 52 این نکل تهدی الى مستقیم انک نکل کاف خطاب به کیه؟ به پیغمبر اسلام یعنی اون که خدا میخواد هدایت کنه به توی پیغمبر داده پس اگه میخواید هدایت خدا رو بدانید چیه برید سراغ پیغمبر سوره مبارکه اسرا آیه نه ان نه حازل قرآن یهدی للتیه یقبم پس اون هدایت الهی که قرار پیغمبر مجسم و روشن کنندش باشه تو این کتاب اومده در سوره مبارکه انبیا آیه 73 و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا حالا اینجا رو دقت کنیم پس وحی از طرف خدا میاد پیامبر وحی الهی رو از طریق کتاب میگیره ولی خب حالا پیامبر قرار از جامعه بره بعد از پیغمبر اونایی که میخوان نسبت به این امر این دو مشکل جهل هوای نفس و اگر هر دو با هم جمع بشه که دیگه قوا میکنه آیا اگر یک دین خامل است اگر یک دین دینی که تضمین کرده سعادت بشر را و مدعی این کتاب کامل از کم بود ندارد و دیگه بعد از این کتاب دیگه شما نیاز ندارید براتون نازل بشه پس باید همه اون چرا که این انسان برای بهره از هدایت الهی نیازمنده است پیش بینی شده باشد بر این مبنا شیعه چه میگوید میگه یکی از مهمترین عامل برای مندی از وحی به چند معنا یک حفظ وحی از تحریف دو تفسیر وحی به شکل درست سه عملی نمودن و, و اجرای وحی به شکلی که خدا میخواهد برای این هر سه باید مکتب وحی در کنار کتاب و نبی امام قرار دهد اگر ندهد دین ناقصه بنده یک ساختمانی ساختم به عنوان دانشکده پزشکی فرض کنید از این زیباتر در کره زمین پیدا نمی شود خب ساختمون ساختم تمام کتابهای مفید و عالی پزشکی را که در کره زمین از او بهتر پیدا نمی‌شود آوردم توی این دانشکده پزشکی گذاشتم های کلاس از او بهتر ندارید تخته و وسایل آموزش از او بهتر هر چی بخواید از او بهتر نداریم ولی میدونم استادان قلابی بی سوادی میان میرن سر کلاس نه بلد جزوه رو تدریس کنه نه دل سوخته تدریس کنه منم میتونم استاد به درد بخور رو معرفی کنم پشت میزم نشستم چایمو میخورم پیپم رو میکشم هیچ توجه نمی کنم اوغلای عالم حق دارن به من انتقاد کنن این چه دانشکده ای بود دایر کردی خدای عالم اگر دین می فرستد پیغمبر قرار میدهد دهد 124 هزار پیغمبر با این همه خون دل خوردن این همه رنج بردن بعد بیاد بگه اکمل تو لکم دینکم و اطمام تو علیکم نعمتی اما به فکر شیاطینی که بعد از پیغمبر قرار بیان برن سر این کلاس مثل یزید بیاد بگه من خلیفه پیغمبرم مثل معاویه بیاد بگه قرار دین پیغمبر رو من اجرا کنم و مردم رو هم با اون نادانی سوق بدن که روز آشورا تیر میزنه یه درد شمشیر میزنه یه درد ولی درد نکتر چیه وای بذاری یه روایت از پیغمبر بخونم این روایت خوب دقت کنید تو اوال یا لعالیه جلد چهار پیغمبر فرمودن خوب دقت کنید شب آشورا اینا رو از پیغمبرتون به دل بگیرید و برید روش فکر کنید انین ما اخافه آل امتی الفقره ولكن اخافه عليهم سوء تدبير من بر امت از فقر مالی نمی ترسم می تونن حل کنن نیرو بذارن برنامه ریزی کنن دقت کنن حل میشه از چی می ترسم؟ بد فکری بد اندیشی بدترین بردگی بردگیه فکری و اندیشهیه ولذا ببینی اندیشه رو تا به کجا خراب کردن تیره گذاشته تو کمان روز آشورا امام حسین رو نشانه گرفته میگه خدایا شاهد باش برای اطاعت اولول امر یزید سر پیغمبرم را میکشم یعنی از خدا طلبکارم هست دارم عبادت میکنم قرار بود شناخته وحی این باشه لذا امام حسینم در روز آشورا چیکار کار میکرد؟ صدا زد بعضی پیر رو به اسم فلانی, فلانی فلانی فلانی نبودید که پیغمبر لب و دهان مرا میبوسید ندیدید و میفرمود حسین مننی و انا من حسین شما شاهد بر این قضايا نبودید پیامبر برای اینکه اسمامه حجت کند آقا گوینده یه معمولی یه مقداری ادب به خاطر رعایت کنه معمولا میگن نگاهش رو تقسیم کنه به همه مستمعین توجهش به مستمعین بکنه، بی احترامی به مستمعین نکنه. حالا پیغمبری که انک علا خلق عنازیمه بالای منبره تو مسجد و نبی دیدی کسی به ادب پیغمبر که نیست. پیغمبر داشت صحبت میکرد برای مردم. یه دفعه پشت کرد به مردم. الیه یا حبیبی، الیه یا, یا حبیبی. اصلا چی شد؟ همه مردم حساس شده. دیدن از اون در حسین کوچولو داره میاد. پیغمبر تعمد داره این کارو، یعنی همه یه طرف حسین من یه طرف علیه یا حبیب علیه بچه کچیک دشمی اومد پاش گرفت به این هسیرای لیف خرما که زبره افتاد پیانبر از منبر دویدن اومدن پایی بچه رو بغل کردن اومدن بالای منبر بغلش کردن دست بردن زیر چونه مبارک سر بردن بالا زیر گلو رو هی بوسیدن هی بوسیدن هی فرمودن حسین منی من و عنا من حسین حب الله من حب حسین الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه الحسن و الحسین امامان غاما و اینا رو که نشون داده بودن روز آشورام امام حسین فرمود نگه نش میدید، اما وای وقتی که این فکر را آلوده کنن تا کجا آلوده کرده؟ ما با عقل با قرآن با روایت میبینیم مهمترین اصلی که وحی را حفظ میکند و عقل من و شما را برای بحر مندی از وحی مدد مینماید امامت بعد از نبوت و ان در شبهای های جمعه ای که بحثو ادامه بدیم ادله محکمشو خواهم آورد ولی اینو چیکار کردن یک امامت اصلی رو بخوبن جانشین قلابی رو تقویت کنن درست مخالف اونچه که پیغمبر گفت حالا نمونه براتون میگم غزالی من مخصوصا از اینا میخونم که اینا مطرحن یه آدم معمولی نیست الاقتصاد فل اعتقاد صفحه دویست و سی و چهار. مسئله امامت مهم نیست و از مسائل عقلی هم نیست بلکه مسئله است ولی چون رسم بر این است که مباحث اعتقادی را با بحث امامت ختم کنن ما هم تصمیم گرفتیم این بحث را ترک کنیم دست شما درد نکنه ممنون محبت فرمودید ما این کتاب الاقتصاد و الاعتقاد کتاب اعتقادیه؟ خدا رو بحث کرده، نبوت رو بحث کرده، معاد رو بحث کرده میگه لا امامت که مهم نیست ما بحث کنیم ولی چون رسم اینجوریه ما میار پیراجه به امامت میزنیم آمودی کتاب قایت المرام فی علم الكلام صفحه 362 کتاب درسی دانشجویان رشته کلام در دانشگاه الازهر مصره کتاب امیری است در حد خودش و مطرح بدان بحث در امامت نه از اصل دینداری است و نه از امور ضروری که انسان نتواند خود را از آن کنار بکشد بلکه قسم به جانم کنارگیری از اون بهتر از درگیر شدن در آن است ولی چون رسم بر این شده است که در آخر کتابهای کلامی بحث امامت را مطرح میکنند ما هم برای اینکه با این رأس مخالفت نکرده باشیم این مسئله را ترح میکنیم. کنیم این چیز مهم نیست حالا یزیدم میاد هر که صفت میکنه بسید بکنه تو نمازتو بخون روزتو بگیر یزیدم کارو خودشو بکنه ولی در مقابلشم اعتراض نکنه بیا صبح شبم به یزیدم بگو از سلام یا خلیفت رسول الله او وقت اینجا جانم به پدایت قمر بنی هاشم چی میگه؟ میگه الله این قطعتم و یمینی به خدا اگه دست راستم و بریدید این نیوها میعبداً دینی من از دینم حمایت میکنم ولو با بی دستم باشم اما دین من چیه؟ و این امام صادق یقینی اون امامی که صداقتن باید امام باشه و او سزاوار امامت و او کیه نجل نبی طاهر الامینی از اون خانواده ای که قرآن متحرشون معرفی کرده و قرار نظام اجتماعی با هدایت اونها به جایی برسه میر شریف جرجانی کتاب شرح المواقف جلد هش صفحه 344 اینم از اون صاحب نظران مشهور دنیای کلام غیر شیعه است کتاب ایشون هم در مصر و بسیاری از دانشکده های الهیات کشورهای اسلامی در دنیا تدریس میشه برخلاف شیعه که امامت را مسئله اعتقادی میداند ما امامت را نه مسئله اعتقادی و نه از اصول دینداری میدانیم، بلکه این مسئله مربوط به کارهای مکلفان است ولی چون رسم بر این است که متکلمان در آخر کتابهای کلامی خود آن را طرح میکنند ما هم تر کردیم در داخل کشور من و شما هم نویسندهای تحت تاثیر این افکار کتابی نوشت که امامت مهم نیست امامت فروع دین است و این که شیعه میگوید امام باید از طرف خدا باشد علم لدنی داشته باشد اسمت داشته باشد اینها قلوب است و مطالبی که شما در زیارت جامعه امت رحمی کنید عوج قلوب است بنده سجل جواب نوشتم چاپم شده موجودم هست یک جلدش در رابطه با امام دو جلدش در رابطه با کل انبیا این جریان تفکر که در جامعه ما هم رواج پیدا کرد از یک طرف امامت مهم نیست هر کی بعد از پیغمبر اومد ولو یزید کار خود شو بکنه شما هم تو خونت بشین نماز رو بخون اون وقت توقع داری وحی در نظام اجتماعی خودشونشون بده؟ ولی نقطه مقابلش چه کار کرده؟ فقط این بره آقا نقشه بودا من یه سال ده جلسه تو محرم تو همین تهران شد 16 سال قبل بود با ادله متقن و منابع تاریخی اثبات کردم که پس پرده همه اینها به دست یهود اون زمان بود نقشه کشیده بودن همونجوری که كعب احبار رو وارد دنیای اسلام کردن همان گونه که ابوهریره رو وارد دنیای اسلام کردند آقا این تعجب آور نیست در مهمترین کتابهای مثل صحاح سته که قرار روایات پیامبر را به عنوان خوراک فکری امت اسلامی در اختیارشون بگذارن از اهل بیت پیغمبر حتی امیر المؤمنین پنجاه حدیث بیشتر نداره ولی از ابو چند هزار حدیث داره این نقشه حساب شده نیست و ابو که یه یهودی که هش ماه یا نهایتش بعضی تو تاریخ گفتن یک سال و هش ماه منده به رهلت پیغمبر اومده گفته من مسلمان شدم یه نویسنده بی غرز استاد حدیث دانشگاه غیر غیرشیعه محمود ابو ری کتابش هم تو الازهر تدریس میشده فوت کرده چل پنجا سال قبل فوت کرد کتابی دارد از واعون علا سنت نبویه در این کتاب میگه من تعجب میکنم ابو حریره هشت ماه بیشتر پیغمبر رو ندیده یا یه سال هشت ماه بیشتر ندیده اگر پیغمبر شب و روز فقط برای ابو هریره حرف میزد این مقدار روایاتی که ایشون نقل کرده نمیشه خواه این همه از کجا اومد موقع اینجا چی کردن؟ حالا دقت کنید استالغابه جلد یک صفحه 24 الاسابه. جلد یک صفحه دو کوچکترین نسبت گناهی به صحابه کفر است. دقت کنید چه ارزش کنم امامت مهم نیست. آنو بذارید کنار. راجع به امام بحث نکنید. اما از این طرف صحابه پیغمبر. حال جامعه الاحکام القرآن جلد هشت صفحه دیوی همه صحابه عادل بودند و اولیاء و اصفیاء الهی بهترین بعد از انبیا بودند. ابو زرائه از قول عبدالله ابن یزید متوفای دویست و شست و چهار قمری در کتاب الاسابه جلد یک صفحه هیجده فتح المقیس جلد سه صفحه 92 وقتی کسی را دیدیم که یکی از صحابه را جرح می کند بدان که او زندیغ است چون قرآن و پیامبر حقا و واسطه وصول اینها برای ما صحابه است کسانی که صحابه را جرح می‌کنند در واقع می‌خواهند کتاب و سنت را باطل کنند از این رو خود اینان سزاوار جرح و زندیق بودن هستند بنده در دانشگاه زاهدان سخنرانی می‌کردم بودند از دانشجویان شیعه غیر شیعه اساتید شیعه غیر شیعه علمای شهرم به مناسبتی شرکت کرده بودند. بنده انتقادی راجع به معاویه مطرح کردم بعد از جلسه یکی از آلمان غیرشیه در اونجا پاشد به بنده اعتراض کرد گوشت شما طبقی این هم شما به صحابی پیغمبر جسارت کردید معاویه صحابی پیغمبره گفتم اینجا است، محیط علمیه خواهش میکنم آرام باشید دانشجویان اسادید شما غذابت کنید بنده یه سؤ اگر قرار صحابه هر کاری کرده درست باشه و ما حق انتقاد به کاری که با آیه نمیخوره نداریم با سنت پیغمبر کارش نمیخوره حق انتقاد نداریم با عقل تطبیق نمیکنه حق انتقاد نداریم این چجوری میتونه با دین جوجر بیاد؟ من رو یه سوال میکنم معاوی صحابی پیغمبر بود به نظر شما خیلی خوب حالا یه مدتی کوتاهی پیغمبر رو دیده حالا ارز میکنم که امار یاسر تو جنگ سفین به معاویه چی گفت و سفاش چی گفت حالا ارز می‌کنم اما من یه سوال می‌کنم علی ابن ابی طالب صحابی پیغمبر بود یا نبود گفتن خب بله گفتم شما علی ابن ابی طالب را علاوه بر صحابی پیغمبر خلیفه چهارم قبول دارید یا نداری گفتم زمانی که خلیفه بود، شما هم خلیفه چهارم قبول دارید، معاویه با علی جنگید یا نه؟ گفت بله. گفتم حق با کدوم یکی بود؟ گ ما نمیدونیم، هر دو حق بودن. گفتم این همو حرف اشعریه که حسن و خوب عقلی نداریم عقل حق دخالت نداره اینجا که میرسن نمیره چرا نمیفهمیم اینان این قضیه در مدینه برای من پیش اومد نزدیک بود سرمو به باد بدم توی محیط علمی بود بعضی از اساتیدشونم بودن قرار شدیم این بحث مطرح بشه گفتم من یه سوالی میکنم آیا در کتاب صحیح بخاری صحیح مسلم مطرح شده که پیغمبر فرمودن ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضى لرضاها نه گفتن بله بله شده گفتم اینو داشته باشی؟ آیا در همین صحیح بخاری آمده یا نه و ما تطفاتمه و هی قذبان من ابی بکر و عمر؟ فاطمه از دنیا رفت غضبناک بود و به خلافت زمان خودش معترض بود خب مغظوب فاطمه که مغظوب خداست مغظوب خدا چجوری میتونه صحابی پیامبری باشد که ما حق انتقاد به اون نداشته باشیم من همه چیزو فکر میکردم اگر بگن اینجوری جواب بدم الا این جوابی که شنیدم چه جواب شنیدم سکوت جلسه رو گرفت بعد از مدتی اینو گفتن والله ما اعرف هذا به خدا ما اینا رو نمیفهمیم چرا نمیفهمیم باید بفهمیم لذا امامت و تضعیف کنیم مقام علی و آل علی را که پیان بر شب و روز فریاد میزد علی یلم الحق و مع علی یا علی انتمنی به منزلت رأسی من بدنی یه چیه بگه پیغمبر علی تو برای من مثل سر برای بدنی سر و از بدن بردار بدن یک لاشه متعفلی که باید دفن بشه علی را آل علی را امامت شیعی را از اسلام بردارید میشه اسلام یزیدی اسلام داعشی اسلامی که هر متفکری از او بیزاره اما اونو بکوبیم اونور بیایم صحابه رو اینجوری معرفی کنیم هرچی صحابه میگه درسته حالا جانم به فدایت حسین جان حسین که حسابش جداست ببینید یاران حسین روز آشوراه زمینی که دارن می این تفکر باطل و چجوری دارن نشون میدن. یک حالا ما اتفاقی از بعضیش. جناب محمد پسر عبدالله ابن جعفر پسر عزت زینب دو تا پسر از زینب روز کربلا شهید شدن دیگه و حتی دارید که وقتی دو تا بچه ها شهید شدن زینب سلام الله علیها ها برای هر شهیدی می اومد به کمک امام حسین امام حسین یه خیمهی برپا کرده بودن عبدان متحر شهدار رو از میدون می آوردن این خیمه می چیدن یکی بدن از اول فضو نیاوردن. آوردن هم خودشون سفارش کرده بودن هم اصلا نمیشد شد بدن داد هم شاید نمیدونم، امام حسین دیگه قدرت نداشت چون دیگه دست به کمر گرفته بود را میرفت. یکی بدن مبارک خود عبی عبدالله بود که تو قدال قتلگاه بود که انشالله از مختل اگه بتونم براتون می امشب معمولا عبدان رو امام حسین می آوردن تو خیمه سرارم و عصر آشورا و فرداش جلو چشم زن و بچه اومدن تو این خیام بریدن اونجا تو میدان نبریده بودن یه سر وحب تو میدان بریدن که پرد کردن به طرف مادر یه سر خود عبی عبدالله بود که تو میدان زمن جنگ بریدن لذا وقتی که امام حسین میرفت بدن هر شهید رو بیاره تو خیمه زینب میدوید میامد جلو، همراهی با امام حسین میکرد زنا رو آرامش میداد بقیه رو تسلی میداد ولی وقتی دوتا بچه های زینب شهید شدن امام حسین رف عبدان بیاره زینب از تو خیمهش بیرون نیومد میگن وقتی به مدینه برگشتن عبدالله شوهرش گفت شنیدم دو بچه های من شهید شدن چون عبدالله دستش مشکل داشت نمیتونست تو کربلا شرکت کنه شما برای هیچ کدوم نیومدی گفت عبدالله اونقدر حسین رنج کشیده بود که دیگه نمیخواستم خجالت بکشه ببینه من بچه هام هم دادم زینمه دیگه مگه میشه چیزی گفت حالا این از ظاهر بچه هست از ذره سنی نه یک نوجوان هم کمی شد از نوجوان هم سنش کمتره حالا رجز چیه؟ رجز خدا رحمت کنه استاد شهید متحریر یه بحث قشنگی راجبه رجز های آشورا دارن میگن نشانه تفکر و شعورش که با شعار داره بیان میکنه شعاری که پشتوانش شعوره حالا محمد ابن عبدالله ابن جعفر چی میگه گه نشکو الله من العدوانی غتال قوم فر ردا قد تركوا معالم القرآنی و محکمت تنزیل و الكفر و ازهر الکفرم عجب شعاری نشو الله خدا یا به تو شکایت میکنم از این دشمنانی که دارم میجنگم با کی قتال قوم فرده امیانی که در گمراهی کورن انقدر کور کورکورانه گمراه شدن که دیگه اینا چشم ندارن حق رو ببینن قد ترکو معالم القرآنی اینا معالم قرآن را رها کردند و محکم تنزیل و تبیانی این آیات نازل شده ای که احکام محکم الهی رو داره و تبیان شده اینا را رها کردند و از هرون الكفر مع التقیانی کفر را با این تقیانی که اند کاملا آشکار کردند نافع ابن حلال حلال بجلی یکی از اصحاب حالا از بنی هاشم نیست داره رجت میکنه انا ابن الهلال بهجلی انا علا دین علی و دین او دین شمشیر میزنه داره جلو در این حال داره میگه من هلال پسر من ابن هلال بهجلی دینم دینی است که علی گفته انا علا دین علی و دینه دین او نبی اما دین نبی رو اگه میخوایم، همونیه که علی از فیغمبر به ما معرفی کرد الرحمن ابن عبدالله الیزنی یمنیه من ابن عبدالله من آل یزن دینی علا دین حسین و حسن از روب کمزر فتن من اليمن ارجو بزاکل فوزه اندل معتمن من ابن عبدالله از آل یزنم دینی علا دین حسین و حسن دین من دینی است که حسین و حسن گفتند از رو بکم فتن من الیمن یمن زربتی که یک جوان یمنی داره میزنه من میزنم ارجو به زاکل فوز اندل معتمن با این شمشیر زدن که بر مبنای دین حق علی و حسن و حسین که همون دین نبیست دارم میجنگم میام از خدا فوز را برای خودم میخوام مالك ابن انس المالكي یکی از شهدای کربلاست قد علمت مالکها و دودان و الخندقیون و قیس و, قیس و ایلان به انقومی آفت العقرانی لد الوعا و سادت الفرسانی منظورم اینجاست آل و علیین شیعت الرحمانی آل و زیادن شیعت و اول خودشو معرفی میکنه من اینم من اینم قبیله ما اینه قوم ما اینه آل علی شیعه و رحمانی اگر پیروان خدای رحمانو میخواید برید سراغ آل علی آل و زیادن شیعت و شیطانی اینا پیروان شیطانن خودشونو به جای دین جان زدن زهیر ابن الغینه آقا من در رابطه با این زهیر متحیرم که این آدم چه آدمی بوده و به چه توفیقاتی رسیده حالا ببینید چی داره میگه انا زهیر و اناف نلغینی از دودکم به سیفه ان حسینی انا حسینن احد از من اطرت البر تقي زینی زاکر رسول الله غیر المینی و از ولا ارا من شینی یالیت نفسی قصر مت اینی ضربت میزنم من از این خانوادم ای کاش تکه تکه میشدم برای چی؟ برای اینکه اینان که از خانواده پاکانن و دارن پاکی و صداقت را به جامعه حالا این پیر مرد عجیب حبیب ابن مظاهر یک پیر تو سن هشتاد سالگی یه عمری هم مجاهدت کرده شب و آشورا داره هی شوخی میکنه هی مزاح میکنه بعضی همسن سالاش گفتن خبیب تو خیلی اهل شوخی و بودی نبودی امشب چیته؟ وجد عاشقانه ای که پایان کار رو بر مبنای عشق راستین داره میبینه میگه چطور؟ شوخی نکنم امشب در پوستم نمیگنجم حالا فردام وقتی داره شمشیر میزنه نشون میده انا حبیبون و ابي مزخر، فارس حیجا و حرب تسعر و انتم اندل عدیده اکثر من حبیبم بابام مظاهره اون جنگجوی شجاعی است که شعله میکشه در جنگ کشیدن و انتم عند العدیده اکثر شما از در شماره خیلی بیشترید و نحن اعلا جتن و ازهر اما اگه دلیل بخواید برای حقانیت گرچه شما تعدادتون بیشتره ولی ادله ما خیلی از شما قویتره. و انتم اندل وفا اقدر و نحن اوفا من کم و اسبر. شما قبازان دروقوی بیوفایی هستید ولی ما افرادیم که صبر سر جامون میستیم. یه جوان قلامی اومد جلو، معروف همین شعر حالا اومده شمشیر بزنه امیری حسینون و عمل امیر میدونید من برای کی شمشیر میزنم؟ امیر من، آقای من، جان من، دل من اونی که دل منو برده او حسینه امیری حسینان و نعمل امیر سرور و فعاد بشیر نظیر اگر پیامبر بر رام و بشر و منظر میدانید شادمانی دل پیام بر این امیر منه علی و فاطمه والداهو فهل تعلمون له من نظیر کسی امیر من که باباش علی مادرش فاطمه نمونه داری در عالم به من نشون بدید لهو طلعه مثل شمس الها له قرة مثل بدر منیر او اون خرشید درخشنده نور دهنده است که میخواد حقایق را به همه معرفی کند اینان اما حالا خود امام حسین چجوری معرفی کرد؟ اینا اصحاب یکی یکی اصحاب وقت زیغه اصحاب رفتن شهید شدن یاران از بنی هاشم همه رفتن و شهید شدن حالا دیگه نوبت امام حسین شده امام حسین علیه السلام اومدن پشت خیام یا زینب یا رباب یا سکینه علیکن من السلام خدا حافظ منم رفت این زن و بچه همه از خیمه‌ها بیرون دویده همه اومدن بیرون یکی دامن حسینو گرفته یکی پای حسینو گرفته یکی دست حسینو میبوسه شما صحنه رو مجبسم کنید از روز دوم محرم تقاضا میکنم حوصله کنید خدا یا کمکم کن چون روزه ودای ابی عبدالله دل امام زمان رو به درد آورده شب آشوراست نمیتونم اجازه بدی من امشب خون امام حسین بشم و این روزه ودا رو تا حدی که شرائطم اجازه بده با هم بریم جلو شما از روز دوم محرم وقتی عبی... کاروان اینجا فرود آمده اینا رو محاصره کردن گروه گروه لشکر داره از کوفه و شام میاد دور اینا رو گرفتن آب و قطع کردن عذیت و آزار فراوان رو برای اینها قرار دادن امروزم از صبح دیدن همه عزیزان به چه صورت وحشتناکی به شهادت رسیدن حالا امیدشون تنها بازمونده از اصحاب کسا امام زمانشون امام حسین علیه السلام اومده میگه زینب رباب کلسوم سکینه علیکن نمن سلام دو عبی عبدالله رو گرفتن به صورتهای مختلف امام حسین زینب اینجاست خواهرم تو دختر علی هستی این بچه ها رو آرام کن من باید به وظیفهم عمل کنم دارم میرم میدان اما دامن خیمه رو بندازید این زن و بچه توی این خیمه بنشینید من وقتی میجنگم شعار که میدم یه تلی رو یه بلندی رو انتخاب میکنم و اونجا فریاد میزنم الله اکبر لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله الموت اولامن ركوب العاری والعار اولامن دخول ناری و عبی شمسون و اون میغمرون و انال کوکب و بینال غمرینی شعارهای مختلفی شما وقتی صدای منو میشنوید دلتون گرم باشه که من هنوز زندم به هر قیمتی بود امام حسین زینب رو آرام کرد این زن و بچه رو به زینب سپرد. سوار بر جنا شد به طرف میدان می آمد. ولی یه قدم بر داره یه قدم بر میگرده خیمه ها را می بینه اینا الله هم اینا ناموس الهی هن. در میان یک ماش دیو و دد و گرگ محاصره شده اند ولی وظیفه الهی چیز دیگریه داره به طرف میدان میره یه وقت صدای آشنایی اومد محلا محلا یا از زهرا نام زهرا برده شد. صدای معنوسی اومد برگشتید خااهرج زینبه نبه. خاهرم بهرم عذاداری مکن. چی شده خار؟ خب نداشتم جلو بچه ها نمیتونستم. مادرم یه وصیت کرده بود. میخواستم روز آشورا وسیعت مادرمو عملی کنم مادرم گفت وقتی حسین داره به میدان میره از طرف من زیر گلوی حسین را ببوس شاید عصر یازده هم وقتی آمد کنار گودال غترگاه لبها رو گذاشت به رگهای های برید یابی عبدالله گفت مادر به جای زیر گلو ببین رگهای های حسین را میبوسم به بر قیمتی بود زینب رو هم آرام کرد برگردون سوار بر مرکب شد آمد اتمام حجت کند. اینها رو سفارش کنه شاید به طرف خدا بیان هرچه امام حسین سخن گفت فریاد زد هل من ناصر ینصرونی کسی جواب نداد، یه دفعه رو کرد به خیمه ای که ابدان متعرف داده بود و به طرف کوفه یا مسلم ابن اخیر، یا حانی ابن اروه، یا زهر، یا بره، یا آن، یا جعفر، یا قاسم یا عباس، حجومه بردن به طرف ابی عبدالله حضرت در اثر این همه هجوم و جنگ خسته شده بودند بذارید از مقتل بخوانم فوقفل و حسین یستریح فقط فقد ضعف ان القتال فبینما هو واقفون حسین خسته شد یه لحظه روی اسب ایستاد نشسته بود ایستاد از جنگ نگاه میکرد شاید استراحت کنه از عطاه حجرون فوقع علی جبهته یه سنگ آمد به پیشانه حسین خورد فصالت دما من جبهت خون از پیشانی حسین سرازیر شد فاخذ از صوبه دامن پیراهنو گرفت من جبهت خون پیشانی رو پاک کنه فعتاهو سحمان محددان مسمومان تیره آهنیه مسموم آمد به سیله حسین نجاز خونجاری جان فقال حسین بسم الله و بالله علم ملت رسول الله ورفع رأسه الى السماء سرشو به آسمان گره و قال اللهي انك تعلم يقتلونا الرجال لیس علا وجه العرض ابن نبیین غیرا خدایا میدونی دارن کسی رو میکشن که در روی زمین برای نبی دو پسری غیر از او باقی نیست اومتی رو از جلو دید در نمیاد از پشت سر کشید ون به اصد دم کلمیزا خون مثل نابودان جاری شد حسین دستاش آورد این خونه رو به دستش مالید به سر و ریشش کشید گفت اینجوری میخوام جدم رسول خدا را ملاقات کنم ثم رماحو سنان اینجا سنان اومد رموا بالسحم فبق السحم في النحر يا نيزته قالوا يا حسين فروجه فصغته حسين ازعاس بالزمين افضله فا جلس نشست روی زمین فا نزه من نهره نیزه را از گلو کشید بیرون حسین افتاده بود جمعیت نگاه میکردن نمی نمیکردن نزدیک بشه تقدم علیه شمرب نزل جوشم یه جمعی با شمر اومدن دور گودال قطرگارا گرفتن فاسر منهم هم رجلون یغالو لحو مالک ابن نصر کندی این آقا اومد فشتمل حسین به امام حسین دشنام داد و او علا رعسی بس باشم شیر به سر حسین میزد. <تصفيق> و کان علیه غلن صبح یه عرقچین تو سر حسین بود پر خون شد حسین اونو برداشت یه عرقچین دیگه گذاشت یه لحظاتی به حالت سجده افتاد اینجا زرعت ابن شریک اومد فزره بهو الا کفتل یسرا و قطع. با شمشیر به کف دست راست زد این قسمت دستشم بریده شد افتاد حسین به حالت سجده بود کسی جرأت نمی‌کرد نزدیک بشه شمر به سنان ابن انس گفت برو سر حسین را جدا کن سنان اومد تو گودال قتلگاه لرزه بر اندامش افتاد برگشت گفت نمیتونم شمر خودش رفت اینو داشته نباشید حالا اسم بی صاحبم رفته زینب دی دیگه صدای حسین نمیاد زمین میلرزه صدای زل ها همو از خیمه ها بیرون دویدن ولی سالار آر زینب را ندیدن زینب اومد بالای طل زینبیه دید و شم را جالسان علا صدره اون در من از اون زنده کامت بمیده